آره امید که آفریکا و خانادا بود شما من یکیه جیمت بود بابا؟ خیرد خیرد خودش دارد به منم از این باید منم آخه خوشت من صحابت کنید باشد شما با گفتن خیلی با هم دیگه چیز داریم و خلاه من چیز دارم باید که آیا کمانه مدرسی جیمته؟ خوشت یهو چقدر تو یه کم اصلا یه ریاضیه شما. مطمئن که شما خب، اینا صحبت کردن. آقا کمالی ریاضیه که چی ما خب، ادامه بدیم بحث مون ها ببینید پس ما خب ببینید در رابطه با چی شده ببینید در رابطه با سند استراتژیک پس بحث مزیت رقابتی و سی پی بی رو صحبت کردیم بریم سراغ مرحله بعدی در رابطه با سند استراتژیک خب یه مطلب نسبتا تکراری مرحله بعدی در رابطه با سند استراتژیک تدوین معموریت و چشم اندازه ویژن استیتمنت اند میژن چشم و معمولیت خب برای تدوین معمولیت یک سازمان رسالت یک سازمان خب که سازمان ها در مرحله بعدی تو سند استراتژیکیشون بعد میشن استیتمنت رو بنیمیسن رسالت سازمانی رو بنیمیسن برای تدمین رسالت بسید. سازمانی به چهار عامل باید توجه بشه خب؟ یه در رسالت سازمان یک شما باید مشخص کنید چه محصولات یا خدماتی رو دارید تولید می‌کنید. متوجه هستی؟ برای چه بازارهایی؟ برای چه مشتریانی؟ و با چه ویژگی ممتازه، چه تمایزهایی تو کارت دارید درسته؟ یه سوال من دارم محصولات تو مشخص میکنه آوه شرکت ما این کاله ها رو تولید می‌کنه، خدمات خدماتو میده خب؟ ویژگی ممتازه تو هم یعنی چه تمایزهایی رو داری؟ مشتری با بازار چه فرق می‌کنه؟ بازار، فلق و همه هستن خوش دلید. این <تصفيق> بازار عمده فروش هستند که از باری رو حوت ولی مشتری نه دایره ارتباطش کمتره و خورده. خرده فروش تو بازار هست خرده خرده من یه مثال براتون بزنم شما استیکی بیاتون میاد دیگه ها بله آره سگمنتهش تاگت مارکت پوزیشن سگمنت میشه بازار تارگت مارکت مسافیستم مشه درسته؟ ما الان توربین بخار تولید میکنیم ما میگیم توربین بخار را متوجه هستید برای وزارت نیرو، کشاورزی، وزارت نفت میتوانیم بفروشید بس این هم میشه ولی ما متمرکزیم روی وزارت نفت پس وزارت نفت میشه مشتریه رو. من اتفاقا دیروز سند استراتژیک بداشتیم برای یکی از شرکت هامون می نوشتیم اینه مثال. روستاد کنه پلی سرگومه؟ آره دیگه سرگومه مرحله سرگومه اینه مثال برای شرکت ایلیوت درسته؟ بیزنس پلن 2015 ترک تجاری خب؟ و سند استراتیجی معمولیت دقت در بکنید این یه مثال از معمولیت من میشه یه خواهش کامایتون روش این چشمنداز رو با معمولیت یه تعریف رو که به زین ما بمونید عدم خدمتی دارم میگم، ببینید این عدم معمولیت، من این چشمنداز رو به شما نمیگم معمولیت رو دارم بیدم یا میجن استیتمنت میجن خب چهار، یه سنده، یه داکیومنته که چهار عامل شما به نوعی، به شکلی بر توش ببینید و تعریف کنید یک، محصولات، خدمات یعنی چه محصولات و خدماتی؟ ما داریم تولید میکنیم، متوجه هستی؟ دو، برای چه بازارهایی این بعد ببینید توش، داریم تولید میکنی؟ چه مشتریانی؟ برای کدوم مشتریان؟ داری تونیت می‌کنید، منتبج هستی؟ نه خب چهار ویژگی ممتاز یا ویژگی‌های ممتاز چیه؟ استاد این داره که تو همون چشم هم رزا نه فقط تو رست میدونم ما گفتم تکراریه ما تو سند رسالت یا میجر استیتمنت یا سندی که به شکل این چهار مورد ببینیم قبل اینو گفتم میدونم بله گفتیم آره ولی حالا مجبورم اینو دوباره, دوباره, دوباره تکرارشو بکنم. <تصفح> خب که ببینید جای تو سند استراتژی کجاست؟ یک ات کنید مهموریت. این ماموریت یه شرکت دیروس که دیروز سند استراتژیک شده شو می نمیشدی ماموریت دکافن چی نمی شرکت الیوت پینون ملکیش من مدیر داین این ها. خب چنانشی نمودیم شرکت الیوت بینالملل کیش در زمینه تجهیزات دوار مورد نیاز در صنعت گاز و پتروشیمی فعالیت می‌نماید. خب؟ محصولات و خدمات این شرکت شامل ببین محصولات و خدمات این شرکت. پس محصولات و خدماتو مشخص یک، خدمات میدانی از قبیل نصب و راه‌اندازی توربین‌های بخار و کمپرسور سانتریفیوژ دو، خدمات مهندسی مشاوره از قبل تعمیرات توربینهای های خال کمپرسور سانتریفیوژ، ابیابی و انتظار عمل کرد. سه بعدبازای دورهای آموزشی و مرتبط. این هم خدمات. محصولات و خدمات. چهار خرید ماشینات دبیر از قبل توربین و کمپرسور و سانتریفیوژ، پمپ کمپرسور رفت و برگشتی. 5 خرید یدکی ماشینات فوق. شش مشاوره خرید تجهیزات دبیر فوق خب؟ پس داریم محصولات و خدمات رو مشخص کردیم درسته؟ بعد بازار نفتگاز و پخش و پالایش پتروشیمی، و نیرو و بازارهای بینان و تمرکز بر و گاز و پتروشیمی و پخش و پالایش بازار مشتری رو مشخص کردیم متوجه هستی؟ ویژگی منتاز این شرکت با برخورداری از برند شناخته شده برتری تکنولوژیکی نسبت به رقبا تجارب ارزش در زمینه ارائه خدمات با کیفیت بالا و نیست همکاری با دیگر شرکت‌های فعال در زمین تفسید دیوار سعی در ایجاد ارزش اکثری برای ذینفعان و تحقق اهداف سازمانی داره این یعنی ویژگی ممتاز ما میشه رسالت حالا شما رسالت تو یه صفحه تو دو صفحه تو سه صفحه تو نصف صفحه به بره بنویسید اینو بعد تو سند استراتژیکو داشته باشید این اسکوپ کار شماست یعنی چارچوب کار شرکت شرکت و سازمانی متوجه شدید مم. رسالت چی؟ حالا بعد از رسالت سازمانی درسته که ما متمرکززی رو این چهار آیتم مرحله بعدی چشم اندازه که باید نوشته بشه. ویژن است Statement چشم انداز. خب، مرحله بعدی چشم اندازه چشم انداز میشه مرحله چهارم از سند درسته؟ بعد چشم اندازو بنویسید چشم من به شما تو دوره مدیریت گفتم achieve well dream یک آرزوی دستیافتنیه سازمان باید آرزوی خودش رو در قالب یک هدف بلند مدت مشخص بکنه. اچیویبل درینگ، یک هدف بلند مدت. خب، و قابل دستیابی. بله، اچیویبل قابل دستیابی. چشم به سه عامل یعنی سه عامل در چشمانداز انداز دیده بشه. چشمنداز انداز باید متمرکز باشه. یعنی کوتاه توجه بشه به ارزش، توجه بشه به رقابت. توجه بشه به ارزش، توجه بشه به رقابت. درسته؟ وارتست میگه شادمانی برای همه کوتاه، مختصره. خب؟ ارزش داره فرق میکنه. شادمانی رو داره برای همه خلق میکنه. و داره به نقابت توجه میکنه میگه شادمانی برای همه یعنی میخواد تو سعر... یعنی تو بازار مخواد رهبر بازار باشه آرزوی دستیافتنی یک مدیره خب؟ چشمانگازی رو که ما برای این شرکت دیروز نوشتیم همین دیروز هم داغ داغ داغه معروف خب؟ همین جواب هم آه؟ <تصفيق> <تصفيق> نه دوستان یکی از ممتازترین شرکت ها در زمینه خدمات تجهیزات کوتاه و مختصر ارزش داره خلق میکنه و به بحث رقابت داره توجه کنه یکی از ممتازترین شرکت در زمینه خدمات تجهیزات دنبار متوجه منظر من هستید We are one of the best suppliers in terms of rotating equipment تجهیزات دنبار سوالی هست متوجه شوید داستان رو؟ فرق چشمنداز با رسالت گرفتی؟ رسالت چارچوب کار شماست ولی چشمنداز آرزوی شماست آرزوی دست یافتنی یک مدیره برای رسیدن خب از این داستان بیهیم بیرون <تصفيق> برای, برای, برای کسی می تحویل بدین در قالب همین پاورپوینت باید تهیه بشه آره، دو قالب پاورپوینت می باشه اصلا من خودم همیشه سند استراتژیکو رو که می نویسم دو قالب پاورپوینت می نویسم با یه تیم دو نشون می زندی. هم سنده حتی که سند دول ورد باشه یا پی دی اف باشه که هم قابل پریزنت کرده خیلی ممنون استادیم الان گرفتدیم از یه رو کامل؟ بله، بله خب، بهم سرانه مرحله بعدی از سند استراتیجیک خب، بعد از تعریف چشمنداز، چشمندان سازمانی ما آیتمی داریم به نام سی پی ام competition process matrix مهمه خیلی خیلی خیلی اهمیت داره خب competition process matrix ماتریس فرایند رقابت این ماتریس چیه وضعیت شرکت شما رو در مقایسه با رقبا مشخص میکنه در مقایسه با رقبا وضعیت شرکت و سازمان شما رو در مقایسه با رقبا مشخص میکنه competition process matrix باعضیات شما در موقعیت با رقبا مشخص می‌کنه دقت کنید دقیقا تحلیل آنالیزه یا انالیسیسه. یعنی شما وضعیتتون در رابطه با رقبا به چه صورته مرحله بعدی تو سند استراتژیک. خب چیزینی همین تو تاکیدش دقت بکنید این چک نیست 11 آیتم یعنی شما بر اساس 11 آیتم که تو این چک مشخصه وضعیت رو در مقایسه با رقبا تعیین میکنید تعیین میکنید خب ستونه اول شرکت خودتونه وضعیت شرکت خودتون متوجه هستید دو تا ستون بعدی دو تا از رقبای مهمتون انتخاب میکنید دو تا از رقبای مهمتون رو انتخاب میکنید بأ نمره میده تا وضعیت شما نسبت به رقبا مشخص بشه. خب؟ بریم اکسل رو باز بکنیم. خب. می‌بینید نه این 11 عامل ما یه رویوک کرنیم 11 عامل چیه؟ کیفیت محصولات و خدمات آیتم شما یکی وضعیت شما چجوریه؟ وضعیت رغبا به چه صورته؟ قیمت رقابتی قیمت شما چجوریه؟ قیمت رغباتون به چه صورته؟ مدیریت ساختار مدیریتی سازمان شما و ساختار مدیریتی رغبا چه صورته؟ آیتم بعدی کارکنان دانش پرسنل شما به چه صورته؟ و رغبا سهم بازار شما به چه صورت سهم بازار رقبا به چه صورته خب عامل بعدی تنوع محصولات شما چقدر محصولات شما متنوع و چقدر محصولات رقبا متنوع متوجه هستید خدمات پس از فروش میدید یا نمیدید توان مالی شما چه توان مالی رقبا به چه صورته متوجه هستید تبلیغات چقدر شما اپلیکیشن میکنید رقبا چقدر تبلیغ میکنند شنوخته شدن نام تجاری برند شما وضعیتش به چه صورته و وضعیت بقول ما برند رقیبا به چه صورته و توسعه فروش فروش شما و توسعه بازار شما به چه صورت رقیبا به چه صورته این تو خدمات چجوری می‌بینید میشه توسعه فروش شما جان اگر کار شما خدمت بشه توسعه فروش چجوری می‌بینید مثلا شما خطر داشتید نمی‌فروشید بشید بله واسه این واسه یه جاسوس چیزی هات بزنم تو شرکت برم نه نه نه ببین نه نه ببینید دپارتمان مالی طرف نه نه ببینید الان بهتون میگم من گفتم سند استراتژیکو یک استراتژیست بعد بنویسه کسی می که شرکت خودشو خیلی خوب میشناسه؟ بازار رقبا رو خوب میشناسه. من رقبا رو خودم خوب میشناسم، رو میدونم. میتونم نمره بدم، توام نمیرم الان دقیقاً بانک به مرا مرام موجودی بانکشونو بدونم به چه صورتی، من میدونم بابا مثلا مثال دارم می‌زنم آقا توربین ماشین خاوره میانه که وقتی ما توان مالش از ما بیشتر یا کمتر اینو میدونم اینو خیلی خوب میدونم اینا اصلا اگه مدیری نه ندونی که اصلا مدیریت هم بکنه سازمان رو به جز لزارت هم بکنه ببینید خب بنابراین 11 امل چیه ستون بعدی وزنه. وزن وزنو این وزنی که ما اینجا به درجه اهمیت خب شرکت به شرکت فرق میکنه درجه اهمیت ممکنه در یه شرکتی کیفیت محصولات از در درجه اهمیت بالاتری برخوردار تو توی شرکتی از در درجه اهمیت پایینتری ممکنه در شرکت شما قیمت مهم باشه تو سازمان من مهم نباشه دارد. یا تو سازمان شما ساختار مدیریتی مثلا تو سازمان شما یه درجه اهمیت داره تو سازمان من یه درجه اهمیت دیگه داره تو باجای شرکت که دانش کارکنان اصلا مهم نیست مثل آجان صاحب و پیمان دانش کارکنان مهم نیست طرفت کار کنه ولی تو سازمان من مهمه مثال دارم میزنم براتون تو یه شرکتی تطبيقات مهمه ممکنه شرکت شما تطبيقات خیلی مهم باشه شرکت من اصلا همیت نداره به خاطر همین وزن بدید به مجموع وزن ها باید چقدر باشه 100 100 یا یک باشه خوب حالا اینجا یه مثال یه مثال گروه انتخاب، لوازم خانگی انتخاب، ما از این سریع کلاس دیگه پر کردیم گروه صنعتی انتخاب اومده خودش رو با الژی و سامسون مقایسه کرده خب؟ تو رقابت، در بازار ایران، با الژی و سمسونگ متوجه هستی؟ و از یک تا چهار به خودشون نمره دادن نتیجه نمرات ببین امتیاز که از یک تا چهاری در در وضع میشه میشه امتیاز جمع یا امتیاز موضوع متوجه هستید؟ یعنی مثلا اگر یک پده چه دلی میشه؟ چهار دخواه میشه یک سفدر وز میشه دیگه یا اگر چهار پده چه دلی میشه؟ میشه دو دهم از یک تا چهار نمره میدید الان وضعیت گروه سنتی انتخاب در مقایسه با سمسون گروه انتخاب یک و هفت همون چهاره سمسون و الژی جفتشون سه به بالا هستن. پس از نظر وضعیت رقابتی گروه انتخاب پایین‌تر است از سامسونگ و ال ما اینو بعد داشته باشیم. این ماتریس رو بعد داشته باشید که وضعیت سازمان خودمون رو مقایسه کنیم با بقیه شرکت ها. درسته؟ بریم یه مثال پر بکنیم. شما اسم شرکتتون شرکت بازرگانی از اون بالا رو می‌بینیم. امتیازها الان پر می‌کنید دستتون. پر پر بازرگانی اروند. بازرگانی عروند. الوند بله خب تو سر رقیب تو بگو تو سر رقیب ما خمو قرون دوله رقیب نداری شما به اون شکل نه خب چرا مثلا ما تو این پروژه اخیرمون واردات جو گندم داشتیم خب تو این مثلا رقیب داری آره خب. تو هم داری مثلا شرکت نیستن افرادن بیشتر خب پس ما میذاریم ایکس بله میذاریم ایکس میذاریم وای درست درسته خب وزن میخوای بخواد وزن ها من فعلا دست نمیزنم فرض با همین وزن ها جلو با همین وزن ها جلو خب نمره خودت رو میتونید به من بگید در مقایسه با رهی بیت کیفیت محصولات، توی کیفیت محصولات از یک تا چهار نمره بده. خب، سه میدم. به خود سه میدی از یک تا 4 کیفیت محصولی. خب، به x 7 میدی به که می باز این محصولی که ما اخیراً آوردیم اولین بار تو کشور وارد میشه. محصولی از اروپا است. محصولات قبلی که تو وارد بازار وارد می شده مال اوکراین و روسیه و جاهای دیگه بوده. این اولین بار محصول اروپاییه که حالا ما حالا بالام نمیگیریم. خب. باشه. خب. به ایکس و چند میلیم؟ اونها به خاطر خدمتشون و به خاطر نوع کالایی که تو بازار صابده پیدا کردن الان از دید خریدار محصولشون با کیفیت تر از ما محسوب میشه. پس اینها رو چهار ها؟ باید چهار تا. حالا من خب، این باید چهار میدیم خیلی، قیمت رقابتیتون، فردی میکنه، نمیکنه؟ چجوریه؟ دقیقا برای اساس بازاره خب، روز شما, شما اینجوری که ارزونتر باشه، ملوانا ارزونتر باشه؟ نه، اینست از... کاملا رقابتیه ها؟ یعنی بازار خودش هر روز نشون میده یعنی فردی نداره، این اصلا عامل این آمل، آملیه که دقیقا این حالا ما یک کمی میتونیم پایین تر بدیم که حاضر که بازار رو بهتر داشته باشیم بقیه؟ مثلا سه میدیم برای شما را بقیه بدم؟ چهار بدم؟ سه بدم؟ دو بدم؟ چی بدم؟ حالا سه بدیم سه میدم چند در فقط محصول ما تو بازار هست؟ خب امتیازه پای اونم سه میدم آنم سه بدیم برای خب. مدیریت ساختار مدیریتیتون از یک تا چهار چه نمره به خودتون میدید به اونا چه نمره میدید همه رو سه میدم خو خب. کارکنان دانش کارکنانتونو به خودتون چه نمره میدید به بقیه چه نمره میدید؟ دو خو خب. سه سه بعضتون خرابه ها بگه وضعیت کار کنان اونا بهتره؟ ما اولین کاریه که تونیترمی نیستم آه شروع کردیم سهم بازار شما چه نمره به خودتون چه نمره به یک چهار. خود دارم نه اتفاقا الان <تصفيق> 4 3, -3 میدم بیشتر از اونا الان بله تو این مخته مختهی من دارم چیز دارم محصولات شما ب پس سه بدم دو بدم مال شما چند بدم؟ دو بدم مال ما رو یک بدین <تصح> یک مال اونا سه سه خدمات پس از فروش شما میدید نمیدید اونا میدن، نمیدن، نمی چه جوریه مسئول نیست که خدماتی بودند نه درست خدمت که مثلا ما تا انبار بوده و ما زنزن با خاک زمین ام. مثلا چی شده ما اومدیم قیمتمون بودیم پاری‌کار که دیگه محسوس بر به همه تاثیر که خب. توان مالی شما با بقیه توان مالی ما با بقیه نه همه ما رو چهار بدین چهار سه تبلیغات میزن تبلیغات که شما میکنید در محایست با بقیه نه داره چون کاملان چی در انحصاریه در تو همه صفت دادم شناخته شدن نام تجریم ن یک بقیه؟ چهار سه چون قدیمیای بازار هستن خب؟ توسع فروش، میزان فروش شما در مقایسه با بقیه دو، سه، سه چرا دو، سه، سه؟ این جنس رو نمی خودتون وارد کردید؟ پس که دست خودتون رو بهتر شما میتونید بفشید که خب آره من یه بازاری که آره شاید ایشون چون دوستشون تا این کار هستن یه ران تو یک مافیای خاصی داره یک چیز عجیبیه <تصفح> همیچی نا <تصفح> یعنی از طرف رقب میان در قالب خریدار میگیرن می قیمت رو میگیرن دست دوم سوم قیمت رو خراب میکنن اصلا یه چیز عجیب و غریبیه آه. که اصلا نمیشه روش تصورم کرد. ما شما نفرمست، از اون چیه؟ نین سه کردیم، جا ببین، شما شده دو چهار دهان بقیه سه و پونزه و سه پس وضعیت رقابتیتون خوب نیست یعنی شما در رابطه با استراتژی هاتون باید به شکل و روش تقدید رقابتی به خونساب کنید اگر بشه یه چیزی که به نیست؟ آره ما ساعده مرش نجاز ما این یازده عامل اینجا گذاشتیم درسته اوه. رو بعضی از عوامل شما پایین‌تر هستن اون عوامل بعد کار کنید مثلا یکی شل نام تجاری باشه بتونین این سرعتی بود که تفاوت برنامه و استراتژی شما رو آره. من گفتم امسال فروش سال ولی سال بعد برندسازی آره این اهدافمون هستش این به نوع اینجا ارا خودشو داره نشون می‌ده بس وضعیت رقابتی شما مناسب نیست در بازار متوجه شو به سی پی آره؟ سوالی هست؟ خیلی خوب، بریم سراغ بحث بعدی از صنده استراتژی ببینید یعنی این باز یه مثال دیگه هست همه شرکت ها این بحث سی پی ام رو دارن این مثاله اینه الان برگر کینگ گروه قباش سی، پیزا چه مدونم، دا ای دابلیو، لاان جان سیلور، اینا اینا رقبان یعنی شرکت های فس فود هست حضرتی شما هر شد به بعد مقایسه کردید مکدونالدو با برگرکینگ و ویندیز من مقایسه نکردم، سند استراتیجی که در حقیقت مکدونالده خود. که این استخراج شده و بعد مکدونالد الان بعضیتش از برگرکینگ و وقان معروب و ویندیز بالاتره بالتره، خب که در یازده آملی که الان من خدمت شما نوشتم خودشون اومدن مقایسه کردن و وضعیت رقابتی مدخولان بالاتره بله، آقای واردیسی میگه I have been up against tough competition all of my life میگه من در تمام زندگیم درگیر بحث رقابت بودم خب یعنی I wouldn't know how to get along without it و من نمیدونم مثلا بدون این قضیه اصلا یه میشه بیزینس رو مدیریت کرد یعنی اصلا شما اگر بدون استراتژی رقابتی بخواید رو به جلو حرکت کنید امکان پذیر نیست. با آقای والتیسنی خیلی قشنگ به این نکته اشاره می‌کنه. من یه موردی رو داخل پرانتز بگم تا یادم نرفته و بعد قضیه‌مون رو ادامه بدیم. دقت بکنید. بفرمایید. چونان شرکت‌ها در مورد استاندار چه چیزی می‌تونه ارزش رقابتی داشته باشه؟ خب اونم چه منابعی شما دارید که بتونید مزیت رقابتی؟ جواب سوالش رو می‌تونید بدید. مثلاً یکی یک که ما الانش شروع کردیم هم واردات از اروپا است. بقیه مال آسیا که ما برای اینچو سپلای چرخ ارزشش نه نه شما خودش باره. آره. نه نه خودش کشتی داشته باشه، داشته باشه. نه اصلا این که در ایران نیست. خزینه خیلی زیاد بود. بله. این نمیشه نه. از هم که ما یه پول خیلی اونو گذاشتیم که به پوشونه اون الان داریم ماشین‌ها جنس وارد جنس وارد می‌کنیم در که مثلا برای روسیه و اینا بخش‌های دیگه باشه مورد موردین acha توال مال تو پایترا بدی اونها چون شریک داریم. شریک داریم اون شریک اونم الان در از یه رقیب نه توال مال تو کامل بدی بالا چهار 4 چهار بعد تو یه مورد یادم نرفته بهتون بگم یه مورد از ذهنم نپریده این فولدره که من به شما میدم خب استراتژیک management از داره مثال های مدیریت استراتژیک اینا اسناد استراتژی که چند تا شرکت من برای شما اینجا گذاشتم جهت اینکه یه, م... یه سپله داشته باشیم که این سرد استراتژیک بنویسید. اپل فیسبوک گوگل مکدونالد، پپسی والمرک و دیسنی ما شرکت خودم بیارجیینرینگ رو گذاشتم خب سرند استراتژیک به عنوان یک مثال میتونید اینو مد نظر خودتون بگیرید. مثلا شما اینو تایپ کنید. آره، سند استراتژیک خودمو نوشتم. با همکاری دو سه نفر ولی هدش خودام بوده خب بریم سراغ بحث بعدی که شما خیلی دوست دارید. بحث بعدی تو سند استراتژیک استبلیوتی سوات. خب دیگه اینجا کم کم داریم وارد بحث به قول معروف سند استراتژیک میشیم، خیلی جدی. تا الان هران چیزی رو که من گفتم یه سری جنبه‌های اطلاعاتی اولیه است درسته؟ جنبه‌های توانمندی، وضعیت منزلت رقابتی چیه؟ سی پی وی به چه صورت سی پی وی به چه صورته؟ متوجه هستید؟ یعنی تحلیل خیلی جنرال از سازمانتون. خب، حالا از اینجا ببر از این مرحله بعد ما هم برنامه استراتژیک برای سازمان بنویسیم. برنامه استراتژیک برای سازمان بنویسیم. یکی از ابزارهایی که در راستای برنامه ریزی استراتیجیک کاربورد داره تحلیل سواته تحلیل سوات یعنی چی؟ حالا شما دیگه خوندیم این مقدار کارم راحت تره تحلیل سوات یعنی چی؟ لغات قوت و زفت فرصت و تحدید سوات تحدید رو بتونیم به راحتی شناسایی کنیم این یک ابزاره برای تعیین وضعیت سازمان قبل از اینکه شما برنامه ریزی استراتژیک رو بخواید انجام بدید قبل از اینکه برنامه ریزی استراتژیک رو بخواید انجام بدید یک ابزاره متوجه هستید؟ یک توله دقیقه بکنید SWOT Analysis یا SWOT یک ابزاره که توسط آقای فرید دیوید هم معرفی شده یه سری نقاط ضعف داره یه سری نقاط قوت داره می تونی نکات قوت یا ضعف این ابزار رو به من بگید چیه حالا کارم خیلی راحته چون اینو خوندیت حالا بعدش می‌خواستم این قضیه الان میپرسم ازتون این ابزار یه نقطه قوت داره یه نقطه ضعف داره میتونی به من بگید چیه یازاتو الان فکر کنید نقطه ضعف این ابزار چی می‌تونه باشه نقطه ضعف همین رو تو میگی آره یه نقطه ضعف داره و یه نقطه قوت داره نقطه قبطه چه نقطه ظرفش چیه نقطه, نقطه من... نمیتونه من... بفهمه مستدر؟ من... جار؟ هر کسی نمیتونه بفهمه که یه سیستمی شما خودت فقط میتونی بدونی چیه ساجمان میخواییم یکی نگاه بکنی بهش افراد مجموع نمیتونن نقطه محفیش اینه به نظرمه که درک بکنن سال چیه زفت زفت نداره اصلا تو یعنی من از سال 2005 تدریس میکنم هشت سال دیگه با ملیت‌های های من با ملیت‌های های مختلف هم سرکار داشتم و اینا یک کیسایی رو مثلا، این هم یک کناه آسواد درجی یکه <تصفيق> دوست هر عزیز، هر عبزار نقاط ضعف خودشو رو داره نوست نقاط قوت داره سه نقطه ضعف. با توالی حتما این دانشو ایرانی بهتر بودنگه شما هم من تا به الان مالدیویا رو مال مال خیلی قوی دیدن نه، مال مالدی خیلی باقوشن باقوشن به جیرانی تو توی بزنس یا تا الان چن تو توی تمی تجربه تدریسی که من داشتم خب از ملیت‌های مختلف بودم مالدیوی چیز وحشتناکی هست مالدی با خیلی قدیمی من دیدم که بوتسوانا بوتسوانا از یعنی دانشجو حالا نمیخوام جنرالایز بکنم بگم دانشجو مالدیوی خیلی باهوشن یا دانشجو بوتسوانی خیلی باهوشن من دانشجو مالدیوی سر کلاسم داشتم دانش قبصانه داشتم حوشی که در این چهار پنج تا دانشو تا حالا در عمم ندیید یه چیز عجیب غریب یه چیز عجیب غریبه, غریبه. مثلا مادیات تو بحث ریاضی ماتماتیکس خیلی اونا که الان من دیدم در حقیقت باشون تمام داشتم نه ایرانی ها باهوشم تا خب حالا یه ضعفی که میتونی بگی من فهم کنم سواد وقت خودش رو محدود می‌کنه به یه زمان ببین من خیلی خلاصه بگم سواد در انارکی راحته فوق‌قلاده سخته فوق‌قلاده سخته، به شما درست گفتی پیچیده است پیچیده است اصلا آسون نیستش آره، دیگه اول می‌خوای ما نوعات تو ضعف و قوت و فرصانی تعدیده برای سازمان رسیم این ساده است. سا... های در این هم پیچیده است خیلی پیچیده است حالا داستانی که وجود داره طالع، مدع علیه سوال. در یک نسبت ارزیابی محیط داخلی را داریم توی در تحلیل سوال. یعنی مشخص کردن نقاط قوت و ضعف یک سازمان. ارزیابی محیط داخلی. عوامل قابل کنترل هستند. تحت کنترل مدیره. متوجه و نسبت به رقبا قوت و یا ضعف به شمار می آید. نسبت به رقبا قوت یا ضعف به شمار می آید. خب؟ ولی در مقابل ارزیابی محیط داخلی ارزیابی محیط خارجی رو داریم. عوامل غیر قابل کنترل هستند، درسته؟ و در محیط خارج سازمانه و برای سازمان فرصت یا تهدید به وجود میارن. یعنی عملاً تحت کنترل مدیر نیست عوامل محیط بیرونی. دقت کنید. سؤالی ما سواد داریم اس یعنی استرین استرین یعنی نقاطه. واقع. دوبلیو داریم دوبلیو یعنی غنیمنس. اور داریم یعنی فرصی. فرصی. فرصی. فرصی. داریم فرصی. یعنی فرصی. متوجه هستید S و W تحت کنترل شماست و نقاط قوت و ضعف. ولی این T محیط بیرونی شماست و تحت کنترل شما نیست سوالی که من دارم چه عواملی در محیط بیرونی شما هستن که بیتونم فرصت و تعدیل برای سازمان شما رو به وجود بیارن چه عواملی؟ O -T. اجتماعی، و بگید به من چند عامل باسم. اول من بگید چند ببین من الان صحبتی که دارم میکنم خیلی مونولوگ و مخکم عوامل محیط بیرونی شما چند تاست که میتونه فرصت و تهدید برای سازمان شما رو به وجود بیاره چند تاست حالا تعداد نمیدونم نه زیاد نیستن. تعداد محدود مشخص عوامل محیط بیرونی که میتونه تحدید و فرصت در سازمان شما رو بزن همی‌کنن ده‌ها مشتریان تعداد افرم بگیم یازده‌ای که ها؟ یادم من یازده، یازده، یازده یازده، یازده، یازده یه هفته بود، یه دو دسته بود، دو سا اتا بیل می‌با نه، یازده‌ای آقا، یازده یازده، یازده دقیقاً دو دسته‌ست دقیقاً دو دسته‌ست، خوا اونت حالا، بنیم ساری این او رو نه بابا، یه که دارید به سوا تا تو این اینجا برلن با بحث همین خب، یازدنم همین بگو تینا خوب یه 6 تا یه 5 تا بکن. حالا درسته. حالا یه تا یه 5 تا است. خوبه. سیاسی. سوشال کلچر. سوشال کلچر. الا بهم یک فارسی شده دیگه دیگه سیاسی، اقتصادی، پررنگی، تکنولوژی، جغرافیا. یعنی این شش عامل در محیط بیرونی قرار داره برای سازمان سازمان‌ها می‌تونه تهدید و فرصت ایجاد بکنه ها جدا از این شش عامل و پنج عامل دیگر هم داریم درسته بله بله سوپلایر ها کام کاستر ها البته کمپتیتیشن کمپتیشن بعدین تعرفه برای رس‌ و‌. تا ورسر. تا بازار. تا بازار. برای مالیسی کنه دیگه شو میده خدا ورود به بازار. خالا خدمات جایگزین. <تصفيق> 11 یازده عامل تعمی کننده مشتری رقبا ممانه ورود بازار خالا و خدمات جایگزین. خب؟ بسته این که را به دور تقسیم شده بود آره، الان آره میگم خدمتون ببین شش آمل اول محیط جنرال، محیط عمومیه رو همه شرکت ها و سازمان ها در هر سرعتی که هر تاثیرات خاص خودشو داره میذاره، میدونین؟ مثلا ما میگیم موارد سیاسی آقا الان تحریم جزی عامل سیاسی رو شرکت همون تاثیر میذاره رو من تاثیر میذاره روی قرنادی شما تاثیر میذاره همه تا غالبا فرصت یا تهدید تأثیر خودش میذاره یعنی این شش عامل رو بهش میگن شش عامل محیط عمومی محیط عمومی محیط عمومی درسته؟ برای شما چه فرصتی میتونه باشه تهدید؟ میگم، برای شرکت ما فرصت چرا؟ به خاطر اینکه الان ما تجهیزات های تک داریم تولید میکنیم وزارت نقل نمیتونی اینو برن خارج از کشور وارد کنه ورداره بیاره لذا برای ترمین کنندگان داخل یه فرصت که فروششون افزایش بده اگه تحرین برداشت میشه اصلا برای ما تحدیده شرکت یه گول خارجی میان با قیمت پایین تر از ما میخوان عرضه کنن خب؟ آنه برداشتی میشه؟ نه آسطا این عامل بعدی رو ما بهش می‌گیم محیط صنعتی. پنج عامل بعدی رو بهش می‌گیم محیط صنعتی. این پنج عامل تهدید و فرصت ایجاد می‌کنه برای شرکت، ولی صنعت به صنعت متفاوته. صنعت به صنعت متفاوته. مثلا صنعت ما تأمین کننده ما رو بیچاره کرده، تهدیده. مشتری تو سنت ما تهدیده. ولی تو سنت آموزش دران شما مشتری هستید دیگه تو این سنعت مشتری تهدید نیست، چه اصلا هم باشه سنت به سنت فرق میکنه هجم رقابت سنعت به سنت متفاوته موانع ورود به بازار. یعنی سختی که یه رقیب تو تا با خواهد رقابت میشه سنت به سنت فرق میکنه رو که تو سنت شما زیرساخت خیلی زیادی نخواه پس مبانه مورد به بازار بالاتره پس فرصت میشه برای ولی برای من موقع تهدید باشه ببینید یازده عامل ما بر اساس این یازده آمل فرصت و تهدید رو برای شرکت ها و سازمان ها مینویسیم اوکی؟ تعیین میکنیم درسته دو عامل بعدی، S و W S و W یعنی نقاط ضعف و قوت. آب نقاط ضح و قوت میتونید به من بید نقاط صف و قوت درون سازمانی ما چ چیزی میتون نقاط ض و قوت رو استخراج بکنیم. این هم خدمت رو توضیح داده بر این نقاط ضعف و قوت عوامل درون سازانییه درسته؟ عوامل در توسعه سازمان تحت کنترل مدیر هم. ما نقاط قوت و ضعف در درونه یک سازمان بخوایم بررسی بر روی چی به چه عواملی باید دقت بکنیم؟ بازاندگی مالی مدیریت دیگر. شش عامل یا شش فرآینده برد. که در سازمان می توانند نقاط قوت یا ضعف برای شما به وجود بیارن بولید. یعنی اگه میخواین نقاط قوت یا ضعف در درون سازمان بنویسی به این شیش فراید، به این شیش دپارتمان توجه کنید این چیه؟ بازاریابی باید. بازاریابی تولید مالی, مالی؟ نه، اون میره تو مدیریت آیتی آی و توسعه آه. یعنی شش عامل. که میتواند برای شرکت ها نقاط قوت یا ضعف رو به وجود بیاره. یعنی اگر شما نقطه قوت یا ضعف رو می‌خواید برای سازمان‌ها ها بنویسید به این شیش عامل باید توجه کنید. شیش خونه از نمی سازون نمی به توزی ای در حاله زی بچه که بخون برم اونجا و دانشتار کنم؟ همه هنگی خونم که مدرکه دانشگاه مالذی رو بتونیم بگیرم بسانیم من چیزهایی که از این ما من خیلی کنیم آن نمیام سچانم هم رو بیتن نمیام کی میخواد بیاد آها اصطاد گلی بلی بسانم بسانم بسانم بسانم بسانم چی گفتم الان چی گفتم؟ بشه که بابا چه خبره بعد صدا کرده براسوه گفتم به این پساتید آیتوی رو با من کلکل نکن صدا رو میبرم، فانا کردن روکم فرید جای خوبم هم بودم هفته خوب بود استاد آجه هفته بیشه وانا یه استاد این بود بالا گفتیم جای شما خالی آمد فرمه بودم صدا پایینه خیلی آرومه آروم صحبت میکنم POT انجام بدیم، یه با بای, بای, بای سمپل مثال انجام بدیم یه نکته، یه نکته خیلی خیلی مهم سوات رو که برای یه شرکت میخواید انجام بدید یعنی وضعیت یه شرکت میخواد میخواید بنویسی رو بنویسی خب؟ نکته قوت، حد اکثر چهار آمل مشخص کنیم درسته؟ حد اکثر چهار تا، بیشتر چهار تا نورد بشه؟ نقطه زد چهارتا فرصت چهارتا تحلیلاتم هر تاکسات چهارتا هر چهار تاکسات حد هر تاکسارای نه دکارت بکنی چرا من میگم چهارتا فکر کن چرا میگم چهارتا چرا میگم چرا میاد تعدادش هر تاکسات چهارت تا باشه باز نباشه چرا؟ چرا اصلا؟ پس پرداز شما الان بسی پر نمیروزی یه استراتژی کدی؟ تو برنامه ریزی یه حالا بعدا من م تو توزیم دم به مشکل میخورید. یعنی برنامه استراتیجیک تو خیلی کامپلیکیتر و پیچیده میشه چون این سخته میگیید چون سوات سخته چون مثلا من رفتم توشی یکی دقیق کردم یه سری آمانه رو باید یکی بیشتر از چهار سا بشه حالا 5 تا باشه <متحدث> اوکی <درمجنس> برای یه دفعه دفعه دفعه دفعه نباشه. ولی یه دفعه 10 تا نباشه. حالا 6 تا باشه اوکیه. ولی من جدی هم میگم حالا ولی یه دفعه نری نقاط قوت تو 20 تا بنویسی، ضعف تو 35 تا بنویسی، تا خب ممکن شما تو سازمانت سی تا نقطه قوت داشته باشی، 40 تا نقطه ضعف ممکنه، مسلماً ولی ما میگیم مهم‌هاشو بنویس اون بولداشو پرنگاشو حالا چهار تا حالا 5 تا 6 تا دیگه زیادتر از این نباشه ولی من میگم عادتاً چهار تا باشه اوکی خیلی خوب بن شیت رو دوباره باز بکنیم شیت اکسلو رو نه الان استرولوژی آنالیز کونی بیشتر آگه هر چهار تا مثلا ولی شو سی پی و سی ار, سی ار اینا نه اینا منظور موارد با جزئیات میشیم اون توی مرض چون من بعد از این ببین سی CPV، ایم، و کامپتیتیف ادوانتیج، این یه تحلیله خیلی جنرال و کلی از سازمان با. من از این مرحله به بعد میخوام برنامه ریزی استراتیجی برای سازمان بریم تدوین بکنم استراتژی سازمان رو خیلی دقیق باید بنیمیزم، ببین سواد خیلی گله گشاده خب یکی از نقاط خوبتش، نوع... نقاط ضعفش رو بنایین باشه 11 آمل محیط بیرونی اینا شش وایده بخوایی متمرکز بشی بعد اگر نقاط به قبضه فرصت درد تعداداش خیلی زیاد باشه ما تو مرحله بعدی تو برنامه روزه میشیم کام خیلی کام خیلی خیلی خیلی پیچیده میشه <متحد> خیلی, خیلی <مطمئن. متحد> خب من این اینی که دارم بهتون میگم تو هیچ کتابی هم ننوشته ها تو هیچ مقاله هم ننوشته هیچ جا هم شما پیدا نمیکنه بگه آسواد تعدادش بعد محدود باشه این تجربه منه من میگم این چهار عامل تعدادش تحت کنترل باشه یا به عبارت دیگه آمله های خیلی پررنگ و مهمی باشه اس، دقیقی تی مهم و پررنگ باشه نه سواتیه مثلا مکدونال نه من آسان تونه میتونستش کردم همینطوری بود چهار مواره، س... سه چهار مواره تعداد محدوده خیلی محدود که سواتش آره ولی مهمه تاثیر رو به نمیسید, به نمیسید. و داره میذاره خب به حالا سراغ تحلیل محیط خارجی اولین تحلیل تحلیل محیط خارجی درسته؟ درسته؟ هاو. خب آبایه این هره اینو باید مهندس اپرایمی که چون خیلی دوست دارم <تصفيق> آیا مدرس شما با من دیگه <تصفيق> معا تحلیل محیط خارجی رو برای شرکت شما میخوام بنویسم خب این شیت دقت کنید. قسمت اول فرصت هاست، قسمت دوم تهدیدات درسته فرصت ها و تهدیدات برای سازمان شما میخوا بنویسم میتونید چند تا؟ آمل بیرونی رو که تحت اموان فرصت داره رو بیزینس شما تحصیل میذاره رو برای من بوشن بگو من بریمیسن تعدیل ما فرصت ها، فرصت ها چند آمل محیط بیرونی رو برای اصلا یازده آملی که من کند منتون که تحت اموان فرصت داره تحصیل میذاره. بگو من اینجا بریمیسن بفرمین، من در خیلی خب باید نمله بدیم، بریم شده اول شما بگی چیشور؟ من فهم کنم تم این کانم ندارم آلا تا به بالا بهشون بفتم زندگی چیست؟ تصویری از نقاشی خداوند است فقط مال بعضی‌ها رو داده داوینچی کشینده <تصفح> مال ما رو داده حدیجه محمدی شیست ساله از علیگو درست <تصفح> <تصفح> آلا بگویم من من دسته باسه اتا رو دورت از زینده میخاید یه مورد دیگه برای برای, <تصفيق> تو، برای تو، تولید کننده ها که الان که جس آقا شرکت شما ببین ما رو شرکت شما بحث داریم خب چه عواملی در محیط بیرونه م. که تا دنبال فرصت برای شما فرصت محسوب بشه رو تا براتون فرصت رو بزنس شما داره تأثیر می‌کنه اصلا مخبرشون جون جوایس برای پیشو آقا یار نه من در اونجا نیده سری برنامه باسته من مگم باید پیشم چی چی چی دیده بابا با هم دایه ربیه رو آهلا یه باش بیان باش یا خواسته یا به چی درست به واقع فرصت ستن چهارتا پنشتال مشتریان فرصت هردان برات بله. خب، اوکی این یه فرصت، درسته؟ بله. خب، چرا مشتری برایت فرصته؟ چون به این سفارش میده این چی؟ سفارش. خب. مشتری سفارش خب، ندیه مشتری، فلوان توی این بازار وجود داره وجودی مشتری زیاد آه، مشتری ها چون زیادن پس فرصت درسته بله. اوکی، بعدی بعد ایش دیگه ترمی کنندگان هستم چرا ترمی کننده برایت فرصته؟ چون اونام چون زیاده با همین حساب بیتونم بدم جلس همو نهدی بکرم آه تعداد ترمی کنندگان ببین ببینی این نکته که میگه درسته ها اگه تعداد ترمی کنندگان شما زیاده برایت فرصت حساب میشه ببین الان من کننده دارم به نام مپنا خدمات ها های سپیت بالانس ازشون میگیرن ا تو رو متوصل ما 15 20 من تام یه شیتیل میدن که کار منو انجام بدن. چوب فقط تو ایران هم یه شرکتی که خدمات تایید بالانس انجام میده. اینو خدمات خاصه. تو معمولا شیتیل به مشتری میده نه به تامین کننده. می نشه. این مثالیه. وقتی باعث جدا تامین کننده‌ها بالا ب... باشه زیاد باشه برای فرصت حساب کشه. انتخاب زیاد. تیار... آره، عدد انتخاب بالاست. خب، عامل دیگه جغرافیی هم داره دیگه توی منطقه جغرافی هم دیگرم چهران جغرافی, جغرافی, جغرافی, جغرافی خاصه. خاصه. من میتونم یه درستو بدن توی شهرستان باقی منطقه پایین تر حالا چند تا بخش کردم یه باست مثلا یه جنس دارم میدنم و هنه نمو ایشگاه این شهر نمیشه تو تو تهران و مرکزه خیلی راحتر میتونی سیلیس میدنم در حقی جاون راحتر به شه اتوازم جغرافیا بس یه فرصت دیگه شد دیگه بلنه. دیگه الوسیا سیم چیه دیگه خدمات کالا کالا خدماتت چرا نه قبولم چرا نه این فرصت برای شما نیست اتفاقا میتونه تهدید ابراز باشه تو کالا شرق... و خدماتی که من میتونم بزنم با باش. خوبه نه نه رقبا کالا و خدمات جایگوزی داستان شیه جایگوزی آها دقت کن، کالا و خدمات جایگزین، داستانش چیه یعنی رقباای شما شماس چه نیتر میدی رقیب شما میاد چه یه شکل دیگه در میاری، یه مدل دیگه در میاری، یه جور دیگه در میاری، که شکل به شکلی به گونه جایگزین کار شما تهدید داره برات میشه اصلا این عامل برات تهدید فرصت نیست آها از اون بعد درست خب امر فرنگي میشه ما اعیاد و معمولا با شینی هم میشه فرهنگی ما ایرانی ها شیرینی خوریم اخلصه کلام الان ایام... ای بوده برای شیر بخورم محرم از اون چه می‌دونم چی چی؟ چه جشن می‌گویم آره. هم تو عذاب هم تو شیرینی؟ بله ما ایرانی ها شیرینی حالا من داشتم بالا می‌گفتم تو مالزی برندی هست به نام سپردرسپی یه برند شیرین فروشیه آره پایدار ها اینو شوره من اینو شوره شورینیه <تصفيق> شورینی. آره آره شوره ما اینجاست این شیرینی اونو کانی می‌دانی؟ اونو آره کی نیست؟ کی نیست؟ می‌خورم دارم, آره. دارم. یه آره. خودم این چه می‌دونم توی مهممی‌ام عضم با شیرینی بیمارستان یه مریض شیرینی با ببریم، استاد بله از این فرهنگی خیلی مهمه دیگه. خیلی باحیه. خب طرف تو میگه مثلا دندون نمی حالا ما خودمون خیلی خوب سمه. تکنولوژی. یعنی چی؟ همون چیزی که بیرون بالا بهم گفتی. سایت رو خب چه تهدیدی در تو شما وبسایت نداری که؟ نه دیگه ندارم برادر. خب چه تهدیدیه؟ فرصت. تهدید هست برای شما خب حالا دیگه است 4 تا واسه بگیم اوکی 4 تا واسه حالا به من بگو کاندیداتی که دارم تو موهبت رقابت کالا و خدمات جایگوزین بریم رقابت تهدیده درست تو بیزنسه شو رقابت بخشی رو شیز رقابت دلت می‌خوام دیگه کالا و خدمات جایگوزین کالا و خدمات جایگوزین خب دیگه خود تکنولوژی خ خب. این جزء مهم ماشای روی؟ و تامین کنندگان اقتصادی یعنی چی؟ ترمی مرد ترمی مرد دار. دار فرصت که آه تو فرصت داشت. آ دو فرصت خدمات یعنی چی؟ همون نه نه، با... چیز. مهم احتصادی. مهم، اقتصادی یعنی چی؟ اقتصادی موقعیت چه مثلا فردا نفت گرون میشه یا هر چیزی تامین ما میره بالا دیگه. نه اصلا کاری نداره. یا هر چیز دیگه احتصال نه, احتصال نه، با تحریم داره. چرا فرق داره؟ چرا فرق داره؟ اول وضعیت اقتصادی مردم خیلی مهمه. نه اینه میخوام بهت بگم. میخوام اینو بهت بگم. آقا تو مردم که پول باشه نباشه. درآمد مردم بالا بره، پایین بیاد. دلار گرون بشه، ارز بخورن، بخورن، بخورن. مخلس یعنی اینو خب فهم میکنه استاد. کم کم میاد. کم کم. تاثیر میذاره ولی 4 نمیشه باشه. نیست. به نظر من من نگاه به دوستاشیش با از داره خیلی زیاد داره آره شینی نه بریم سر اقتصادی رو آره من نمی‌شم دوباره نمی‌شم درست نه می‌تونیم یه موضوع آید تو بچم یه موضوع می‌تونه هم تحقیق بشن فرصت نه نه نه نه نمی‌تونه ما روی دیگه در آورد خود دیگه نه، نه، نه، این اون جمعیت چناسی چی؟ جمعیت چناسی؟ مثلا، جمعیت چناسی از یه باور از بسیگی داره به کار من که مثلا توی، میتونم یه سری کارها رو بزنم فرصت میشه جمعیت چناسی، این چی؟ یعنی مثلا، همین پاساژه میتونم یه سری دست اوشات بزنم مثلا یه طبق خاصی از افراد جامعه هستی که جوان هم میرن اونجا دوست دوستایان چیزی رو محمد میاد بدیم سم؟ نه. خیلی خوب. من یه دوستمون گفت تو اوکی کافی کافی علاقت اذن اذن کافی اینی تا دست فرصت تهدید. ببین سختی کار اینجاست کسی وقت بدیمسه که نسبت بیزینسش هست تاش باشه. بدین قاط کنید. یک دو از اینا اگه جابجا نمیشه بشه اشتباه نمیشه میشه کل برنامه‌ریزی استراتژیک شما اشتباه میشه. میدونی چی دارم میگم؟ کل بحث برنامه‌ریزی استراتژیک شما اشتباه میشه. حالا مرحله بعدی بعد از شما فرصت ها و تهدیدات رو لیست کردی خب وزندهی دهی بر بکنی درجه اهمیت بد بش بدی یعنی توی فرصتا داشی مشتری تامین کننده جغرافیای فرهنگ هرکدونه اینا چند درصد اهمیت داری تو بیزنس شما وزن بده چند درصد مشترک مجوز 100 بشه مجموعش فاید آره. آره. مشتره چند درصد اهمیت داره با عنوان فرصت در بیزینس شما چه درصد. چهارده هم خب تمیل کنندگان 20 درصد خب دو ده یه دهم به من فرهنگی, فرهنگی تا دو جایی بیشتر هم داره تا دو به اعتقال مشتری سه ده هم سه هم این میشه باعثه. درسته؟ مرجعش چند شو دوستان؟ یک, یک دیگه. یک, یک درسته؟ حالا بم سراغ تهدیدات. رقبا، کالا، و اقتصادی، کالا خدمات جمازی و خدمات تجاری به اختصاری، بده. این تهدیدات چقدر اهمیت داره تو بیزینس شما؟ درجه اهمیت عرض به بهش بده. رقبا چند درصد؟ کالا و جایگزین چند درصد؟ اقتصادی چند درصد؟ نیروی انسانی هم میشه. نیروی درون سازمان. به ما الان محیط بیرونی رو داریم، چه اگه تو بس نیرمه انسانی میشه می جوزه نقاط قوت یا زرفشان خب بگو خیلی بازی باشه هنجاز روغوه ها زیاده برای آبتر بالا. تا چهل بعد باشه من چهل بهش بدم یه درصد هم یه در درصد هم بدیم به اقتصادی درسته؟ من درست داستان چی شد؟ لیس وزدهید، مرحله من بعدی باید امتیاز بدید به فرصت و تقدیم. امتیاز بدید یعنی الان مشتریان شما به عنوان یه فرصت در سازمان شما تاثیرشون چقدره رو بیزینس شما اگه تثیر خیلی بالایی دارن فرصت ها عدد بالاتر بده اگه تحصیل کمتری دارن عدد؟ پاینتل بده از یک تا چهار نمره بده. مشتریان مشتریانا چه نمره میدی از یک تا چهار؟ چهار دیر. چهار چهار؟ نه، ببین لبرش نمی کنم خوز چی؟ من نه، نه، نه، نه، میارید اوکی می وزنو ببین. ببین، اجازه بده از اینجا که میخوای نمره از یک تا چهار بدی؟ بله، مشتری مهمه ولی بله شقد <تصفح> این فرصت با این وزن میخونه رو بیزینس شما داره تاثیر، شرکت شما داره تاثیر میذاره. ببین مشتری وزن سال درصد هم هست. ولی چقدر این فرصت تو بیزینس شما داره تاثیر مثبت میذاره. حالا مهمه نیست. 4 4 ببینم 4 اونم. دو دو که ها. نه. نه نه مهم باش تو حالا چیه که در دره ماج استدلال چیه تو به اون موقعیتی که بازاری که وجود داره نسب به وزن خودم من نگاه میکنم نسب به جایگاه خودم چی تو دیدم که میتونم انجام بدم جایگاهش دره اونجوری درست همین شما پورسلینی که گفته دیگه تو تامین کنندگان از یک تا 4 نمره می گیره یه فرصت چقدر فرصت میتونیم ده برداری تو بکنیم چه این فرصت چقدر رو بیزینس تو تاثیر میذاره کمکت کرده از یک تا چهار دو. دو جغرافیا جغرافیا میشه بگه همون دو فرهنگی فرهنگی سه رغبا به عنوان تهدید حالا اینجا ما تقدیداتو میخوایم نمره بدیم از یک تا از یک تا چهار متوجه استی؟ هر چقدر این تهدیدات تأثیر قوی‌تری رو سازمان تو بذاره و برای تو به قوم محرم مشکل ایجاد کرده باشه عدد بزرگ‌تری پایین‌تر عدد رو داره می‌دین و هر چقدر تاثیر کمتری میذاره عدد بیشتری رو میدی. اینجا بله. خب بگو؟ مقابه از یک تا چهار نمره بده؟ منطقه من از یه شما؟ از یک تا چهار نمره بده؟ روغوا، به عنوان یه چقدر تاثیر بیزنیتت میذاره به عنوان یه تقدید بلاد مشکل ایجاد کرده، دست باگیرت شده هیدک برای ایجاد کرده، از یک تا چار نمره بده دو گیر کردی تو دو, دو, دو, دو. <تصفيق> بینی یک و دو بودن، دو, و دو بودن رو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> با فیداغ خیلی بیشتر از ایناست نه، ببین داره شما که کجا هستی چی، تمرکزت رو چیه؟ چی رو داری تولید می‌کنی؟ این خودش مهمه دیگه برشن برشن. برشن برشن. چون بخش کار ما وسیعه و گسترده است من توی یه بخش مثلا، توی سه تا دنستم بتونم بدنم درست بزنم، همون اون کار خودم رو انجام بشنم. بازار وسیع داری؟ دقیقم کارا و خدمات جای چه نمره می‌داری ردیبش؟ از یک تا چهار برو این سه آره عدد پوینتری بعد بده درست یعنی آخه چرا برای ما ایرانی ها زیاد شکل و شمایل توی شیرینی زیاد مهم نیست. مزه‌اش خیلی مهمه. طعم شیرینی و تازگیش مهمه. خب اون چیز البته من موافق نیستم. آره برای منم زیاد اونم سه تا دیگه. خب اقتصادی چن می‌دی؟ چه رو... همون خب دوستان دقت کنید مرسی ببین فرصت ها رو نوشتیم بعضنا رو نوشتیم امتیاز داره امتیاز ز در بس میشه یه نمره نهایی اینجا میده درسته این نمرات نهایی با هم میشه یه نمره آخر میده دو چه دهم. فرصتهای شرکت ایشون دو چهارده است؟ از چهار. چهاره درسته؟ تهدیدات چنده دو شیشته است؟ از چهار. چهاره متوجه منظور من هستید؟ در مجموع ما یه نمره نهایی روی محیط بیرونی داریم که average یا امتیاز این دوتا عدده یه دو چهارده یا دو شیشته همه داشته چه چند میشه؟ دونیم دو محیط بیرونی ایشون یعنی محیط بیرونی، فرصت ها و تهدیدات تأثیر که رویزین رو میذاره دونیم از چهاره وضعیتش وضعیت متوسطیه یعنی ها... یه تعداد فرصت داره، یه تعداد تهدید داره اینا هم رو داره خونسا میکنه متوجه شدید؟ خیلی خود من اینجا استاب می سوالی هستش؟ نکته خاصی هست؟ هست دادون درصد سوده شد یه چیز برای جلسه دیگر خواهشی که من دارم هیچ کس دیبت نکنه ها جلسه یکی من خیلی ترتیدارم نه، نه، نه، بعده نه، نه، من خواهشی که دارم تو مدیگت و یه به... چیز میشید. یعنی اصلا دیگه دستتون نمیاد. به دوستتون هم من نمیدام چون رای بدن این جلسه سریعه کار پیش رو رو کنه کار زیر داره استاد اینو انیمه اضافه شده <تصح> نمیشه گفتش که بهتره یا بدتره نه دیگه متوسط رو به بالا است دیگه یه خرد فرصت‌هاش میچرده رو تهدیداتش 2.5 از چهار دوستان یعنی فرصتا رو تهدیداتش یه فرده میچرده استاد تو این جدوله نمره ها رو فقط باید بالا و پایینش چیز میگم یا وزنمون توری بود نه نه نه وزن تو نیست فقط نمره هاست نمره باره راست گفتم آره ولی ولی نمره دارین چه داره تأثیر برات میذاره چقدر بدک برا دجار که چقدر خوفي برات آورده چقدر نقطه مثبت برات داشته دوستان برای جلسه آتي من خواهشی که دارم برای جلسه جون ماشي از زبید برای جلسه آتی، دوستان برای جلسه آتی کار در منزل روستان؟ جا؟ کار در منزل؟ نه، یه مطالعه اضافه تو مدیریت استراتژی بعد جلو جلو شما بخونید که وقتی سر کلاس میاد گیج نزنید، یعنی کامفیوز نشید با اطلاق. خب با اطلاق یعنی یه پیستمینه‌ای داشت. داشته باشید دقت بکنید برای جلسه آتیشوان فر صفحه ستابیلی او یه ریلی داشته باشید توی اینترنت مجدد چون ما هنو فهمش نکردیم. ادامه میدیم خب؟ ماتریس جی ای ماتریس جی ای خب؟ بله، ادامه سواته بخونید مجدد؟ و ماتریس توز این ستان رو خواهدش هم من را بخوید یعنی یک م... پیس زمینه‌ای داشت، ما اینا رو می‌گیم، ما درس می‌دیم من می‌خوام یک پیس زمینه‌ای داشت سوات چه ماتریس جی و ماتریس توز هسته باشه ببینید من ببینید من باقی وقت